أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لاصي ما مولانا وصاحبنا بغية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مغدمه الفداء اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلة السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بحمد الله أول دليل أغليك براي بحث وحدت شخصیه وجود آورده‌اند که شاید این مهمترین دلیل و عقلی وحدت شخصیه وجود هست که اینی هم که ما به عنوان اولین دلیل اون رو ذکر کردیم از باب فوق العاده این دلیل بود اون عدم تناهی خداوند متعال بود که از این میخواستن وحده شخصی وجود رو استفاده بکنند که به حمد نقد این دلیل روشن شد و لازم به ذکر هست که نقد های دیگری نیز ممکن است به این دلیل وارد باشه که ما نیازی به ذکر اون نقدها ندیدیم و فقط لازم به تذکر هست که ممکن است که انحصاری در این نقدی که عرض کردیم نداشته باشه نقد های دیگر و نقدهای متعددی به این مسئله وارد باشه دلیل بعدی که اینم یکی از مهمترین دلیل های عقلیه بر وحدت شخصی وجود هست اون تمسک به دلیل علیت هست میخواهند بفرمایند که از دلیل علیت ما عین الربط بودن مخلوقات رو استفاده میکنیم لذا عنوان این دلیل رو میتوانیم این بنامیم که مخلوقات عین الربط هستند تمسک به عین الربط بودن مخلوقات برای اثبات وحدت شخصیه وجود در تقریر این دلیل دو مقدمه ما ذکر میکنیم و تقریر این دلیل در ضمن این دو مقدمه روشن خواهد شد اولین مقدمه اینکه ما با تحلیل دقیق رابطه علیت در میابیم که معلول عین وابستگی به علت است و معلول این رفت است اینطور نیست که چیزی باشد که بین اون چیز و علت ربطی وجود داشته باشه به تعبیر دیگر معلول شیء اون لها ربط نیست و قطع نظر از ارتباطش با علت هیچ هست و نظیر میارن همانند معانی حرفیه که اینها قوامشون به طرف خودشونه در ضمن طرف این معانی حرفیه تازه معنا پیدا می‌کنند معلول نیست فقط در ضمن رابطه با علت معنا پیدا میکنه. امر مستقلی نیست خود همون رابطه به علت است این ربط است حالا چطور این مقدمه و این ادعا که از تحلیل رابطه علیت این ربط بودن معلول استفاده می شود چطور این استفاده رو ما از قاعده علیت می کنیم در بیان اون ذکر شده که علت اینطور نیست که بخواهد یک چیزی رو که قبلا موجودیت و مایی داشته و چیزی بوده به جعل خودش اون چیز رو وجود ببخشه نه چیزی نبوده حالا می توانیم این به این نه ذکر بکنیم که علت به همون ایجاد خودش این معلول رو پدید آورده است چیزی که قبلا ولو موجودیتون ماهی جدایی از علت داشته اینطور نبوده که یک همچین چیزی باشد و بعد معلول علت اون رو وجود ببخشد که اگر بخواهد این باشد این در حقیقت تحصیل حاصله بلکه علت به همون ایجاد خودش اون معلول رو پدید آورده و خود معلول موجودیتی جدای از اون ایجاد الهی جدای از اون فعل الهی نداره و این ایجاد خداوند متعال همون وجود معلوله تصاویری رو که در ذهن انسان هست رو شما تصور بکنید در نظر بگیرید وقتی که انسان میخواهد تصویری رو در ذهن خودش ایجاد بکنه تصویری رو خلق بکنه به وجود بیاره به محض اینکه التفات حاصل میکند به تصویری همون التفاتش سبب به وجود آمدن یک تصویر می شود به محض التفات انسان اون تصویر ذهنی حاصل می شود این طور نیست که اول چیزی رو در نظر بگیرد بعد بگوید که با خودش بگوید که خب حالا من اراده بکنم که این چیز رو در ذهن خودم محقق بکنم بعد این رو اون وقت یک فعلیتی به این اراده خودش ببخشد و اون رو در ظرف ذهن خودش به تحقق برساند نه به محض اینکه اراده بکند چیزی در ظرف ذهنش ایجاد شود آن چیز ایجاد خواهد شد به محض اینکه که التفات به چیزی بکند اون تصویر در ذهن خودش ایجاد خواهد شد و از طرفی به مهز عدم التفات فقط کافی است که آنم ما التفاتش از اون تصویر قطع بشود و اون تصویر معدوم خواهد شد به محض عدم اراده اون تصویر معدوم خواهد شد پس در حقیقت در این جریان خلق تصاویر در ذهن خودمون در این جریان علیتی که ما نسبت به تصاویر ذهنی خودمون داریم در حقیقت فقط ما هستیم وجود خودمون هست و اون وجود اراده خودمون هست به محض اراده آن چیز ایجاد شده است همین که ما التفات بکنیم به یک تصویر ذهنی ناخداگاه اون تصویر در ظرف ذهن ما پدید خواهد آمد لذا فقط من هستم وجود من هست و وجود اراده من و وجود التفات من که این اراده و این التفات همون طرف من هستند فلواقع یک علت این تصاویر هست که همون وجود انسان باشد و یک طرف این وجود انسان و وجود علت که همون اراده و التفات انسان باشه و در حقیقت خود معلول وجود منحازی جدای از این التفات جدای از این اراده و جدای از این طرف علت نخواهد داشت همون طرف علته و به محض اینکه این, این تصاویر رو ما التفات بهشون حاصل کردیم این موجودیت پیدا کردن موجودیتشون منهاز از این التفات ما از این اراده ما نبود معالیل هم نسبت به حق تعالی و نسبت به علت هستی به این گونه هستند که به محض اراده الهی اینها ایجاد خواهند شد اینها پدید خواهند آمد و همینطور که از کردیم که اینها وجود منهازی از اون اراده ما ندارند از اون التفات ما ندارند و در حقیقت همون طرف ما محسوب میشوند که اراده و التفات طرف علت هست و, اینها و مرتبط به علت هستند معالیل هم اینگونه هستند و اینها به همون ایجاد الهی به همون اراده الهی و همون التفات الهی اینها پدید خواهد خواهند آمد و در حقیقت وجود منحازی از این اراده و التفات ندارند و در حقیقت اینها همون طرف علت و طرف خداوند متعال محسوب میشوند و میتوانیم ما از اینها تعبیر بکنیم که اونها همون عین ربط هستند خود حقیقت ربط هستند خود حقیقت طرف هستند نشه اون ربط. نه اون له الربط نه اینکه چیزی تصور شده باشد بعد اون رو بخواهد خود علت همینطور که در صور ذهنی خودمون تصور کردیم بخواهیم اون رو دوباره در ظرف ذهن خودمون محقق بکنیم نه تحقق قبلی جدای از اون اراده ما جدای از اون التفات ما نداشته لذا معالیل خارجی هم نسبت به حق اعلی نسبت به علت هستی بخش همین گونه هستند که اونها در حقیقت عین رفت هستند لذا تعبیر میکنند که معالیل به ایجاد خداوند متعال اینها پدید آمده اند و ایجاد حقیقتش همان حقیقت علت و رفت به علت است لذا اینها هم همان حقیقت رفت به علت هستند لذا خود رفت هستند وجود رفتی دارند این رفت هستند و شیء له رفت اینها نیستند این مقدمه اول که از این مقدمه معلوم شد که معالیل اینها این, این رفت هستند همه ما نسبت به حق, حق تعالی این رفت هستیم نه شیء له رفت در مقدمه دوم بیان می که خب چیزی که حقیقت شد این رفت چیزی که جز رفت به علت نبود در حقیقت وجود مستقلی از علت نداره خب چیزی که اینگونه هست هیچ حکمی نیز نمی تواند بپذیرد چون حقیقتی مستقل از علت نداره این ربط ما به حسب نسب خارجی چیزی به نام ربط و نسبت رو در خارج نمیابیم مورد اشاره ما این ربط و نسبت نمی نمیتواند واقع شود حقیقتا این ربط و این نسبت وجودش همون وجود طرف خودش هست لذا چیزی که وجود ربطی شد این نمیتواند حکمی بپذیرد حکمی جدایی از اون علت خودش نمیتواند بپذیرد و از جمله احکام یکیش خود وجود هست لذا نه این نه تنها که ما نمیتوانیم صفتی رو نسبت به وجود ربطی بدهیم نسبت به حقیقت ربطی بدهیم نسبت به این ربط بدهیم خود وجود رو نمیتوانیم نسبت بدهیم به این حقیقت ربطی لذا نمی توانیم بگوییم این حقیقت ربطی حتی موجود است و اگر نسبت وجود هم به این حقیقت ربطی می دهیم چون قاعده ما این است که وجود ربطی هیچ حکمی رو نمی بپذیرد چون مستقل نیست از جمله احکام هم نسبت وجود هست پس خود نسبت وجود رو هم وجود ربطی نمی تواند بپذیرد. فچیزی که اینا رفت هست رو ما نمی توانیم خودش رو بگوییم موجود هست و اگر هم نسبت وجود به اون می دهیم به طبع علت داریم نسبت وجود رو به اون می دهیم بالعرض و المجاز داریم نسبت وجود رو به اون می دهیم علت هست که موجود هست و این ربط به علت هست لذا از جهت ربط به علت بالعرض و المجاز حکم علت رو که یکی از احکامش همون موجودیت علت هست رو بالعرض و المجاز به خاطر این رابطه و به خاطر این ارتباط به این وجود ربطی هم نسبت میدهیم که این شد همون مدعای وحدت شخصیه وجود که ما اگر تکثرات رو به اونها نسبت وجود میدهیم اینها نسبت بلعرز و المجاز هستند اینها حقیقتا به ذات عدم هستند و آن چیزی که موجود است همون حق تعالی است که ما بلعرز و المجاز نسبت وجود رو به اینها میدهیم و اینها موجود منهازی از وجود حق تعالی ندارند کما اینکه وجود ربطی وجود منحازی از وجود طرف خودش ندارد از وجود علت ندارد و در حقیقت وجودش همون وجود علت است در نقد این دلیل ارز میکنیم که اون چیزی که مسلمه اینه که خب معلول تمام نیاز است به علت خودش و بدون وجود علت و بدون اراده علت نمیتواند معلول تحققی داشته باشه اما این بدین معنا نیست که این معلول ما صرف و ربط باشه زیرا در اینجا یک اراده هست در حقیقت یک مرید هست در حقیقت یک مراد هست در حقیقت اراده اصلا معنایی ندارد جدای از تصور مرید و مراد حتما باید ما مریدی رو در نظر بگیریم، بعد مرادی رو در نظر بگیریم و از رابطه بین اینها اراده رو ما انتظار بکنیم. حتما باید یک ملتفتی رو شخصی رو که میخواهد ارتفاد بکند به چیزی در نظر بگیریم، یک ملتفتی رو در نظر بگیریم و از بین اینها ما، التفات رو در نظر بگیریم لذا از این که خب خود معالیل تمام احتیاج هستن تمام نیاز هستن به حق تعالی حتما وجودشون منوت است به وجود علت و به وجود اراده این علت خب ما این استفاده رو نمیتوانیم بکنیم که اینها همون حقیقت اراده هستند نه اینگونه نیست و اصلا ربط بدون طرفین معنایی نخواهد داشت و باید طرفینی باشد تا ربط معنا پیدا بکند و خود علت و معلول از امور ذات اضافه هستند علت اصلا بدون وجود معلول معنایی نخواهد داشت خود علیت معنایی نخواهد داشت خود صفت علت بدون وجود معلول معنایی نخواهد داشت معلول بدون وجود علت این صفت معنایی نخواهد داشت و ما از در نظر گرفتن اینها خب یک رابطه ای رو انتزاع می‌کنیم و اون رو نسبت می‌دهیم می‌دهیم رابطه الیت رو به خود این حقیقتی که بین علت و معلول موجود هست رابطه علیت رو نسبت می دهیم رابطه ادلیت رو ما می کنیم پس در حقیقت وجود رابط قوامش به طرفینه و در سایر امور هم همین گونه هست ما وقتی می گوییم مخلوقات معالیل تمام احتیاج هستند به خداوند متعال حتما باید یک محتاج الیه وجود داشته باشه که خداوند متعال یک محتاجی وجود داشته باشه که اون وجود معالیل هستند و ما از رابطه بین اینها احتیاج رو انتزاع می‌کنیم و اینی که میگویند مخلوقات تمام احتیاج هستند به خداوند متعال معناش این نیست که اینها خود احتیاج باشند بلکه خود احتیاج بدون طرفین اصلا معنایی نخواهد داشت لذا اینی که میگویند که خداوند متعال ایجاد کرده و ایجاد چیزی جز ربط نیست و ایجاد در حقیقت یعنی اینکه علت معلول را پدید آورده و این مناسبتی اصلا با این ربط بودن معالیل نداره هیچ ربطی اصلا به این مسئله نداره و ما ایجاد رو با در نظر گرفتن موجد که همون علت هست و موجد که معالیل هستن ما این ایجاد رو از اینها انتزاع کردیم و خداوند متعال علم به معالیلی که میخواهد آنها اونها رو پدید بیاورد دارد علم به اونها قبل از خلقتشون قبل از پدید آوردن اونها دارد بعد خداوند متعال معالیل را انشاء می کند معالیل را ابداع می کند معالیل را لامن شی پدید میآورد که حقیقت خلق هم همین است که پدید آوردن لامنشی از چیزی اینطور نبوده که چیزی باشد و از اون چیز پدید بیاورد نه چیزی نبوده و پدید آورده است لذا خداوند متعال خود علت هستی بخش علم به معالیل خودش دارد و اونها رو پدید میآورد و اصلا خود ایجاد بدونه تصور طرفین معنایی نخواهد داشت کما اینکه در ظرف زر ذهن خود ما هم این معنایی نخواهد داشت و اگر ما به صرف تصور خودمون به محض ارادهی خودمون این تصویر ذهنی در ظرف ظرف ذهن ما ایجاد خواهد شد خب این در حقیقت به این سبب هست و به این سبب هست که خود تصویر ذهنی همون متعلق علم ما هست و متعلق اراده ما هست در ظرف ذهن خود ما هم اگر واقعا این دویت و این علت و معلول حقیقتا موجود نباشند اراده به ایجاد معلول، اراده به ایجاد اون تصویر هم معنایی نخواهد داشت التفات به ایجاد تصویر هم معنایی نخواهد داشت و گاهی اوقات چون در زرف ذهن اینها به سرعت بسیار بالایی اتفاق میفته ذهن انسان ممکن است که به خاطر این سرعت از حقیقت این مسئله قافل بشه از حقیقت این تفکیک که بین طرفین نسبت و نسبت قافل بشه و خود طرف نسبت رو بگوید که این وجودش همون وجود نسبت هست در, حقیق در حالی که وجود نسبت نمیتواند معنایی داشته باشد نمیتواند حقیقتی داشته باشد بدون وجود طرفین نسبت و اینی که بیان کردند که خب ربط چون مستقل نیست حکمی نمیپذیرد خود مستقل نبودن اصلا ربطی به حکم نگرفتن ندارد زیرا اگر منظور از مستقل نبودن اینه که اونها اصلا وجودی جدای از علت ندارند خب اولا این خودش مصادره به مطلوبه و ما تازه می از این تحلیل رابطه علیت ای این رو ثابت بکنیم که معلول وجود جدایی از علت نداره و وجودش همون وجود علت است و ثانیان خود وجود ربطی و وجود غیر مستقل این الربط بدین معناست که این وجود بدون طرفش نمیتواند موجود باشد خود عدم استقلال در وجود ربطی بدین معناست که حتما باید طرف باشد تا اینکه این هم وجود داشته باشه ربط بدون طرف اصلا تصور نمیشه لذا اگر ما وجود معلول رو همون اراده علت بخواهیم بدانیم اگر ما اراده رو ربط به علت میدانیم خب در حقیقت یک علتی رو تصور کردیم و یک چیز جدایی از علت که همون ربط به علت باشد لذا اراده نیز در اینجا فی الواقع یک مخلوقی است از اون علت و خودش وجود منهازی از اون علت داره و مستقل نبودنش هم به این معناست که قوام وجودیش به علت از حتما باید علت باشد تا این که این هم معنا پیدا بکنه لذا اگر ما اراده رو در حقیقت طرف علت می دانیم خب اون رو جدای از علت می دانیم ولذا اگر ما حتی وجود معالیل و مخلوقات رو همون عین اراده الهی بدانیم بدین معنا باز این رفتی به حکم گرفتن اونها نداره و مستقل نبودن اونها فقط در این است که قوام وجودشون به علت است بدون علت اینها تحققی نخواهد داشت و اگر هم منظور اینه که این ای که ما بیان میکنیم در حقیقت عین علت است خب در اینجا اصلا رفتی دیگر وجود نداره و نباید بگویید که وجود ربطی حکمی نمیپذیرد باید بگوید چیزی که در حقیقت وجود ندارد حکمی نمیپذیرد نه اینکه وجود ربطی رو ثابت بکنید بگید که این ربط است عین ربط است و بعد بگویید حکمی نمیپذیرد لذا اگر اراده رو بخوایم این دید نگاه بکنیم که خود اراده عین علت است خب در اینجا اصلا ربطی دیگر وجود نداره که ما بخواهیم این مسئله را طرح بکنیم که وجود ربطی حکم نمیپذیرد به خاطر عدم استقلالش این حکم نپذیرفتن به خاطر صالبه به انتفاع موضوع است به این اصطلاح حالا در اینجا به لسان موجبه هست به خاطر این است که اصلا موضوع محقق نشده چون موضوع محقق نشده حکم نمیپذیرد و الا شما موضوع رو محقق بکن خب این حکم هم میپذیرد رضا وقتی که حکم رو میپذیره متصف به وجود هم میشود و معانی حرفیه رو هم که اینها میگوین غیر مستقل هستند خب معانی حرفیه هم حقیقتا وجود دارند ما معنای من رو درک میکنیم بلوجدان معنای من رو درک میکنیم معنای اله رو درک میکنیم این معانی رو در قبال معانی حرفیه و در قبال معانی اسمیه اینها رو درک میکنیم و اینطور نیست که معنای حرفی همون معنای اسمی باشد معنای حرفی همون معنای فعلی باشد نه اینها معانی جدای از همدیگر هستند و ما این معانی رو جدایی از همدیگر منهازه از همدیگر ما اینها رو درک میکنیم لذا اینی که میگوییم اینها مستقل نیستند فقط به این معناست که خب اینها در تحقق خارجیشون نیاز به وجود طرفین دارند معانی حرفیه حتما باید طرفینی باشد در تحقق خارجی خودش تا اینکه این بشود تحقق پیدا بکند و ما از تحقق اونها این معنا رو استفاده بکنیم لذا عدم استقلال اونها به معنای عدم وجود اونها نیست به معنای این که قوام وجودشون به وجود طرفین با وایت طرفینی باشد و ما اینها رو انتزاع بکنیم لذا ما میبینیم که اینها وقتی که موجود هستند حکم هم میپذیرند لذا ما احکام زیادی رو در ادبیات به معانی حرفیه نسبت میدهیم خب آیا یعنی که ما داریم یک امر پوچ و عبس و, و پوچ انجام میدهیم نه ما در قبال اسم و حرف یک معنای رو درک میکنیم که البته اون معنا به محض این که در ظرف ذهن بیاید معنای مستقلی میشود از این جهت که در قالب مفهومی قرار گرفته و هر مفهومی در ذهن ما به لحاظ وجودی خودش غیر مفهوم دیگر است جدای از مفاهیم دیگر است و از این جهت خب یک چیز مستقلی است و هر مفهومی در ذهن ما هر چیزی رو که ما درک میکنیم این درک ذهنی اون استقلال دارد از به حل وجودی خودش از مفاهیم دیگر لذا تعبیر می‌کنند که مفاهیم به لحاظ وجودی اینها متباین از یک دیگر هستند لذا بله در ظرف ذهن خودمون ما یک معنایی رو درک میکنیم یک مفهومی رو درک میکنیم جدای از مفاهیم دیگر که این مفهومی که به لحاظ وجودی مستقل است خودش حقیقت دارد مراتیتش نسبت به خارج غیر مستقل است خارج را وجود خارجی خودش را غیر مستقل نشان میدهد و قوام وجود خارجی خودش رو در ظرف تحقق طرفین نشان می‌دهد. لذا همینطور که معانی رو که ما در قبال معانی اسمیه و معانی حرفیه درک کنیم نسبت می‌دهیم، ما نسب دیگری رو حتی با توجه به خارج ما میتوانیم به این معانی حرفیه نسبت بدهیم مثلا بگوییم که این یک ابتدائیت بدی بود شروع بدی بود اینی که میخواست حرکت بکند از فلان نقطه به فلان نقطه این حرکتش این ابتدائیتش این ابتدائیت بدی بود ابتدائیت خوبی بود و نظرمون به همان معنای حرفیه باشد خب خود ما میفهمیم که از لفظ چه داریم اراده میکنیم این لفظ رو ما بگوییم، این نسبت رو ما بگوییم با توجه و با نظر به اون معانی حرفیه یا بگوییم با توجه و نگاه به معنای علا بگوییم مثلا وصول بدی بود، وصول خوب خوبی بود که حالا البته اینها رو برای تقریبه به ذهن عرض میکنم که می توانیم ما با نظر به این معنای حرفیه یک حکمی رو متوجه اون نسبت بکنیم بگیم این نسبت اینگونه بود نسبت خوبی بود نسبت بدی بود و اینی که در لفظ به نحوه مستقل تعبیر میکنیم چون موتنش در ذهن که مفهوم هست حقیقتش یک مفهوم ذهنی است خب این به لحاظ وجودی در ذهن ما مستقل است و مرآتیت خارجش این غیر مستقل است لذا حتی معانی حرفیه که اگر اونها رو هم ما نسب بدانیم اینها حقیقتا وجود دارند و احکام میپذیرن و عدم استقلالشون فقط به این معناست که باید در ظرف طرفین اینها معنا پیدا بکنند. لذا اینی که اینها بیان میکنن که در مقدمه دوم که چیزی که این ربط باشد حقیقتش ربط باشد نسبت باشد در حقیقت حکمی نمیپذیرد این در واقع یک امر باطل و بیدلیل است لذا این دلیل نه تنها دلالتی بر وحدت شخصی وجود ندارد در حقیقت یک کلام بی بیربط و بیمعناست که حتی در تصور هم نمیگنجه و باید با مکابره بسیار زیادی ما این رو بتوانیم تغریر بکنیم که در خود تغریرش هم خود این اشکالاتش و تناقضاتش و بی رفت و بی معنا بودن این دلیل خودش روشن خواهد داشت لذا وقتی که چیزی اینگونه هست نوبت به این نمی رسد که بخواهد چیز دیگری رو برای ما ثابت بکند لذا این دلیل هم که یکی از مهمترین ادله اقلیه قائلین به وحدت شخصی وجود بود این باطل شد و نقد اون روشن شد. دیگر همینطور که از کردیم نیازی به طرح سایر ادله اقلیه نداره وقتی که مهمترین ادله اقلیه اینگونه هست سایر ادله که دیگه جوابش روشن هست و عزیزان میتوانند خودشون با مقداری تعمل جواب اونها رو بیابند. مسئله دیگری که انشاءالله در جلسه آینده از جمله استدلالات بر وحدت شخصیه وجود انشاءالله در مقابل دلیل عقلی بر وحدت شخصی وجود به اون خواهیم پرداخت مسئله شهود وحدت شخصی وجود خواهد بود که به عنایت امام زمان علیه السلام به اون خواهیم پرداخت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته